آنا یک شمبه 18 آگسته 2013 غروب اون کف آشباز خون است خون ریزی داره اما فکر نکنم چه باشه تام هنوز تمومش نکرده من من واقعا نمیدونم منتظر چیه گمونم براش ساده نیست خب یه وقتی دوستش داشته ایو رو گذاشتم پایین رو دخ فکر میکنم این همون چیزیه که میخواستم نه؟ اینکه ریچل برای همیشه بره، یه بار برای همیشه و دیگه هرگز بر نگرده، این چیزی که من رویاشو میدیدم، خب البته نه دقیقا اینجوری اما رفتنش آرزون بود، من رویای یه زندگی بدون ریچلو داشتم و حالا میتونم به رویام برسم، این زندگی درست بر ما ستاست. من تام و ایو همیشه دوست داشتم اینجوری باشه برای لحظه به خودم اجازه دادم از خیال پردازی لذت ببرم اما بعد به دخترم که خوابیده نگاه کردم و متوجه شدم اتفاقی که نباید میافتاد افتاده یه خیال انگشتم و بوسیدم و گذاشتمش روی لبای دخترم و فهمیدم که ما دیگه هرگز امنیت نداریم. ما هرگز امن نیستیم چون من من همه چیز رو میدونم و مرد نمیتونه بهم اعتماد کنه کی گفته یه مگانه دیگه با همون سرنوشت نشه یا حتی بدتر برای آنهای دیگه ای برا من دیگه ای رفتم پایین اون نشسته بود پشت میز آشپزخونه در حال نوشیدن آبجو اول رایچل رو ندیدم اما بعد متوجه باش شدم فکر کردم کارش رو ساخته اما تام گفت او حالش خوبه گفت فقط یه ضربه کوچیکه این بار دیگه نمیتونه بگه حادثه بوده. بنابراین ما هم جور منتظر شدیم من برای خودم یه آبجور ریختم و با هم نوشیدیم بهم گفت به خاطر قضیه مگان واقعا متاسفه. به خاطر ترس منو بوسید و بهم گفت این کار برای من کرده که ما خوب باشیم که همه چیز خوب ما از اینجا میریم درست همون جور که تو همیشه میخواستی. ما میریم هر جایی که تو بخوای. هر جا. از هم خواست اگه میتونم ببخشمش و من گفتم میتونم. فقط باید وقت بده و اون حرفمو باور کرد. فکر کنم باور کرد حرفمو. طوفان شروع شده درست همون جور که بینی کرده بودن. بارش طوفان بیدارش میکنه به هوش میاد شروع میکنه سر و صدا کردن رو زمین حرکت میکنه تام به میگه تو باید بری برگرد بالا. لباشو میبوسم و ترکش میکنم اما بر نمی کردم بالا. تلفن راهرو رو بر میدارم میشینم رو پله پایین و گوش میدم. گوشی توی دستمه منتظر لحظه مناسبم میتونم صداشو بشنوم که داره باش صحبت میکنه، نرم و آهسته، و بعدش صدای ریچلو میشنوم، فکر کنم داره گریه میکنه.